یک روز صبح که نبش خیابان ساحلی و خیابان آلبانی توی کافه سمت راست نشسته بودم دو مرد وارد شدند و هر دو جلوی پیشخان نشستند برافاصل فاصله چهارشانه چارشانه را به جا آوردم پالتوش همون پالتو ای بود که شب تصادف و موقع بیرون آمدنم از درمانگاه میرابو پوشیده بود سعی کردم خونسردیم را حفظ کنم متوجه حضورم نشده بود هر دو جلوی پیشخان بودند و از پشت می‌دیدمشان. خیلی آهسته حرف می‌زدند. مرد دوم چیزهایی توی دفتر یادداشت ها داشت و در حالی که گوشش به حرفهای مخورمایی چهارشانه بود گه گاه سرش را تکان میداد. میزن به پیشخان خیلی نزدیک بود ولی یک کلمه هم از حرف به گوشم نمی رسید. وقتی من و زن کنار هم روی کاناپه ی هتل نشسته بودیم و او سمتمان میامد چرا تصور کرده بودم این آدم مخوررمایی چارشانه است. بدون شک بیناییم به خاطر شک تصادف مختل شده بود. آن روز هم موقع بیرون آمدن از درمانگاه ذهنم هنوز درست و حسابی کار نمیکرد. راستش تصویر مبهمش چیزی از خوشدیب بودن کم نداشت. ولی موهای پشت و چین‌های صورتش حالت خشنی به قیافش میداد که مرا یاد یک بازیگر آمریکایی که اسمش را فراموش می میانداخت. چند لحظه مردد ماندم ولی باید از فرصت استفاده میکردم، بلند شدم و کنارش به پیشخان تکیه دادم. پشتش را کمی برگرداند. خم شدم که توجهش را جلب کنم. مرد دوم فهمید میخوام با او حرف بزنم بشانش زد و با انگشت نشانم داد سمتم چرخید ساکت مانده بودم ولی تنها دلیل سکوتم خجارت نبود دنبال حرف می گشتم. امیدوار بودم به جایم بیاورد اما او با تعجب و بیحوصلگی نگاهم می کرد خوشحالم دوباره می این را گفتم و دستم را دراز کردم طرفش با سردرگمی دست داد روی ابروهایش چین انداخت و پرسید قبلان هم دیگه رو دیدیم؟ آخرین بار زیاد از اینجا دور نبود در مونگاه میرووا مرد دوم هم با نگاه سردی به من خیره شده بود. ببخشید نمیفهمم لبخندی روی لبهایش موج میزد گفتین کجا؟ در مونگاه میرابا اشتباه میکنین نگاهش از بالا آمد پایین شاید میخواست تهدیدم را ارزیابی کند کفش چپم را دید به خاطر پانسمان شکاف کفشم را بزرگتر کرده بودم اگر اشتباه نکنم قسمت بزرگی از شرم را هم بریده بودم تا پایم راحت تر باشد و روی پانسمان جوراب نپوشیده بودم درست مثل نوارهایی که گاهی روی قوزک از های اسیر به خاطر شکنندگیشان می‌بندند. گفتم: تصادف ظاهرا متوجه نشده بود بله تصادف اون شب میدون پیرامید در سکوت نگاه هم می کرد. به نظرم رسید دارد تأخیرم می کند. گفتم فقط میخواستم از ژاکن با خبر بگیرم سیگار را تا دهانش برده بود و دیگری برایش فندک روشن میکرد بدون بدونان که او هم از من چشم بردارد اصلا از حرفاتون سر در نمیارم آقا لحنش بندازه کافی تخییر کننده بود درست مثل حرف زدن با یک گدا یا یک مست صاحب کافی نزدیک من آمد از دیدن برخورد من با مشتری که گویا برایش محترم بود تعجب کرده و حتی ترسیده بود پس واقعا چیزی نگران کننده ای توی آن صورت و موهای خورمایی کم پشت وجود داشت. حتی توی صدای گرفتش ولی این چیزها مرا نمی ترسندند. وقتی بچه بودم آدم های عجیبی همراه پدرم میدیدم. یکی ترسناکتر از بقیه نبود. در زن میخواستم بگم که واقعا نیازی به این پول ندارم. و از جیب داخلی کتم، دست اسکناسی را که موقع بیرون آمدن از درمانگاه می را به من داده بود و همیشه را هم داشتم بیرون آوردم دستش را با حرکت خشک و تحقی را داد متأسفم متاسفم آقا بس کنین بعد سمت بقل دستیش برگشت صحبتشان را با صدای آهسته سر گرفتند و دیگر به حضورم توجهی نکردند رفتم و سر جایم نشستم پشت پیشخان صاحب کافه در حالی که سرش را تکان می داد نگاه هم می کرد. انگار می خواست گستاخی کردم و این بار را قصر در رفتم. چرا؟ دوست داشتم بدانم وقتی کافه را ترک کردند حتی نیم نگاهی هم به من نینداختند از پشت شیشه دیدمشان که در پیاده روی خیابان ساحلی دور می شدند. دو دل بودم که تعقیبشان کنم یا نه؟ نه نباید عجله می کردم تازه افسوس می‌خوردم چرا با دیدنش خونسردیم را از دست دادم. باید سر جایم می‌نشستم و بدون جلب توجه کسی منتظر رفتنش میماندم تا تعقیبش کنم. بلکه بفهمم کیست و آیا می‌تواند سمت زن هدایتم کند یا نه. ولی با از دست دادن این فرصت میترسیدم نکند پلهای پشت سرم را هم خراب کرده باشم. پشت پیشخان صاحب کافه هنوز با سرزنش نگاه میکرد. گفتم، فکر کنم عوضی گرفتم. شما اسم این آقا رو میدونین؟ لحظه ای مردد ماند. بعد با اکراه جواب داد، سالیر. گفت شانس آورده اید که این سالیر از رفتارتان ناراحت نشده. کدام رفتار؟ یک شب با ماشین تصادف کردم و فقط میخواستم راننده اش رو پیدا کنم مگر کار خلافی کردم گمانم موفق شدم متقاعدش کنم لبخند زد میفهمم. پرسیدم حالا این سولیر واقعا کیه؟ لبخندش شکوفاتر شد انگار از سوالم خوشش آمده بود گفت بچه صاف و ساده ای نیست نه بچه صاف و ساده ای نیست از سر بالا جواب دادنش فهمیدم بیشتر از این نمیداند تو این محله زندگی میکنه تو این محله زندگی میکرد ولی فکر کنم دیگه اینجا نیست میدونی ازدواج کردی یا نه نمیتونم بگم گفتگومان با ورود مشتریهای دیگر قطع شد وانگهی دیگر حواسش به من نبود واقعا خودخواه بودم که فکر میکردم به حرفهای چند دقیقه پیشم با سولیر اهمیت میدهد مشتریها میآیند و میروند و با هم پچ پچ میکنند داد و فریاد هم بلند می‌شود. حتی گاهی نصف شبها مجبور است به پلیس امداد خبر بدهد در این حیاهووو رفته آمد بالاخره چند قیافه و چند اسم در ذهن آدم باقی می ماند. ولی نه برای مدتی طولانی